چاکرای 2 مسیر خواسته مکان قسمت پایین کمر یا ساکرام موضوع خواسته تحقق یافته صفات مصلوب حواس پنجگانه تمایلات جسمی لذت نفسانی تمایلات جنسی و شهوانی مسیرهای زیادی در زندگی وجود دارد اما هر مسیری که در آن هستید به نوعی مسیر تمایلات است. خاسته به ما انگیزه می دهد تا آنچه را که می دنبال کنیم. حتی اگر شما زاهدی هستید که هدفش دست کشیدن از همه امیال دنیاوی است، آن هدف مثل کنار گذاشتن برای به دست آوردن آرامش درونی کامل چیزی است که شما می خواهید. شما به دنبال خاستهی هستید. دقیقاً به همان اندازه که کودک نپایی به دنبال یک تکه آب نبات است. هیچ انگیزهی قوی تر یا پایدارتر از خواسته نیست. خواسته در سیستم چاکرا نیز جایگاه مهم می دارد. تحقق خواسته هدف چاکرای دوم است که در پایین کمر یا ساکروم قرار دارد. در اینجا آگاهی سعادتمند به حواس پنجگانه همراه با لذت نفسانی و جنسی تبدیل می شود. تعالیم بنیانی یوگا می که خاست ریشه در حواس دارد. ما روزهایمان را به دیدن، شنیدن، لمس کردن، چشیدن و بوعیدن می گذرانیم. آنچه که برای حواس جذاب باشد، ما را به یک شخص، شیع یا یک حرف نزدیکتر می کند. چیزی که حواس آن را ناخوشایند می اغلب نشانه حرکت در جهت مخالف است. ایگو قدرت را از خواسته می گیرد. من این را می خواهم و من آن را نمی خواهم باعث می شود که زندگی در سطح ایگو حرکت کند. با این حال اگر خود را از چارچوب ایگو رها کنید خواسته هدف خود را تغییر می دهد. خواسته به جای تقویت خود مجزا و منزوی به سعادت تبدیل می شود. مسیر خاسته های شما به این صورت است. پرجام سعادتمند به سمت کنش سعادتمند و در نهایت به انگیزه سعادتمند منتهی می شود. انگامی که آغاز و پایان یک فرایند به هم متصل می شوند یوگا یا اتحاد خواهید داشت. هیچ چیز عجیب و غریب یا ارفانی در اینجا وجود ندارد مادری می خواهد نوزاد تازه متولد شده خود را آرام کند نوزاد را بلند می کند و شروع به تکان دادن و به جلو و عقب کردن فرزندش در آغوش می کند تجربه با انگیزهی سعادتمندانه شروع می شود به عمل سعادتمندانه می رسد و به نتیجهی سعادتمندانه منتهی می شود در حال حاضر، مسیر خواسته تقریبا در زندگی هر کس توسط ایگو تعیین می شود. با خاسته ها، نیاز تکانشگری و ولع بیپایان. در عوض سعادت این تجربه با فقدان شروع می شود. من آن که می خواهم ندارم. انگامی که خواسته به جای ایگو مبتنی بر آگاهی سعادتمند است، شما با تمایل به توسعه سعادت انگیزه می گیرید. به همین دلیل است که پیروه سعادت خود باشید به عنوان پیروه حوث بعدی خود باشید بیان نمی شود. آرزوهای سعادتمند چیزهایی که در زندگیتان به آن علاقه دارید رشد خواهند کرد و هرچه نادیده بگیرید از بین خواهد رفت. اینکه از کدام انگیزه حمایت کنید انتخاب شماست به این معنی که می توانید از خواسته های سعادتمندانه خود حمایت کنید مجبور نیستید فرایند را تحت کنترل داشته باشید تغییر توجه تنها چیزی است که نیاز دارید شما انگیزه سعادتمندانه ای را ابراز می کنید هر زمان که عشق و محبت خود را نشان دهید از شخص دیگری قدردانی کنید در دورانج شخص دیگری را تسکین دهید از طریق بخشش سخاوتمندانه فداکارانه عمل کنید دانش را جستجو کنید کار درست را انجام دهید صادق باشید کودکی را پرورش دهید امید و دلگرمی ارائه دهید و الهام بخش خود و اطرافیانتان باشید با پیروی از این خواسته ها خود را با جریان هوش خلاق همسو میکنید در اصطلاح رایج ما در خصوص اعمال از خودگذشتگی صحبت می کنید اما حصف خود غیر ممکن است و شما هم نمی خواهید این کار را انجام دهید خیش نقطه عطف شما برای رشد شخصی است امیال سعادتمندانه را باید بی نفس نامید زیرا شما از چارچوب ایگو دور خواهید شد اگر همیشه از خواسته های ایگوی خود پیروی می کردید هیچ کس دیگری اهمیت نداشت. نیازمندان را نادیده می‌گرفتید، هیچ تمایلی به محافظت از افراد ضعیف، کمک به رنج دیده یا دلداری کسی در مواقع پریشانی احساس نمی‌کردید. خوشبختا نه بعد دیگری نیز برای خواسته وجود دارد که شامل افراد دیگر، مهربانی و شفقت است. با طرفداری از آن انگیزه ها از ناامنی و نیاز ایگو فرار خواهید کرد. هیچ جایگزینی برای تجربه سعادت و اجازه دادن به آن برای هدایت شما در رشد شخصی وجود ندارد. نیاز در مقابل خاسته البته همه آرزوها تمایلات و رویاه ها محقق نمی شوند. بیشتر اوقات ناامیدی به ظاهر خارج از کنترل است. شما شغی میخواهید اما آن را به دست نمیآورید. در مسابقه شرکت می کنید و اول نمیشوید. مشتاق شریک رمانتیک ایدهال هستید اما او را نمیابید. تعداد دفعاتی که به چیزی که می خواهیم نمیرسیم در حافظهمان میماند و به شدت بر نحوه برخورد ما با کل موضوع خوااص تاثیر میگذارد. در سنت یوگا، اگر خاسته شما توسط دارما پشتیبانی شود، نمیتوان چیزی را از شما دریخ کرد. چه اشکالی دارد که صرفاً آنچه را که میخواهید درخواست کنید؟ خواستن آنچه میخواهید، ممکن است با چیزی که نیاز دارید منطبق نباشد. دارما از هر چیزی که نیاز دارید پشتیبانی میکند، نه هر خاستهی که در ذهن شما میچرخد. علاوه بر این عمل صرفاً خواستن چیزی در بیشتر مواقع سطحی است سوسو زدن خواسته آمیخته با پچپچه مدافم فعالیت ذهنی. این توضیح راهی فریبکارانه برای توجیه خواسته های براورده نشده نیست. اگر چیزی را می خواهید اما به آن نمی رسید، هیچ کس حتی یک یوگی یا گروه حق ندارد به شما بگوید که رواند را اشتباه تکرده اید. من این شکست تقصیر شماست. وقتی در آگاهی محض مستقر باشید، خواسته های بیهوده کمتری در ذهن شما شناور می شود. از آنجایی که شما با هوش خلاق همراستا هستید، به احتمال زیاد قصد دارید که یک نیاز واقعی را برطرف کنید. این خواسته ها از آن دسته هستند که بیشترین شانس تحقق را دارند. پرچم های قرمز ممکن است در این نقطه بالا بروند. در کودکی عادت به گفتن من می‌خواهم به عنوان عادتی مکرر در ما شکل گرفت که باعث شد وارد این ما اخم کنند و پاسخ دهند این چیزی نیست که شما واقعا نیاز دارید به این ترتیب نیاز به کلمه‌ای تبدیل شد که با خواسته مبارزه کرد با این حال محدود شدن به نیازهای ساده راهی برای داشتن زندگی خوب نیست برای گذر از این مفهوم منفی خاسته باید دوباره چارچوب بندی شود. نیازهای ساده به جای فراوانی فقدان را فرا می خانند. علاوه بر این بیشتر مردم به نیازهای مادی فکر می کنند زمانی که نیاز کودک به عشق یک ضرورت واقعی است به طوری که در بزرگ سادی از بین نمی رود. نیازهای عاطفی و روانی در جامعه ما بیش از همه نادیده گرفته شده و سو استفاده شدند. در یوگا، نیاز را می توان هر امری تعریف کرد که به شما کمک می کند سعادت را تجربه کنید و رشد درونی یا تکامل را ارتقا دهید. چاکرای دوم به عنوان چاکرای خاسته به وفور نه فقط نیازهای ساده بلکه همه نیازها را برآورده می کند. فراوانی مانند مشیت الهی سخابتمندانه در عهد جدید سرازیر می شود. با این حال به دست آوردن هر خاستگی کوچکی یک تخیل کودکانه است. خواسته ها بر اساس چیزی برآورده می شوند که مسیر هشتگانه در بودیسم آن را ذهن آگاهی راستین مینامد. اگر این عبارت را بشکنیم، ذهن آگاهی مربوط به حضور و زندگی در لحظه است. کلمه راستین نشان می دهد که شما باید از درما آگاه باشید، تا جریان هوش خلاق آنچه را که نیاز دارید به ارمغان آورد. در حالت ایدئال کار دیگری برای انجام دادن وجود ندارد. اما این تنها زمانی صادق است که سفر شما به روشنگری رسیده باشد. جایی که آگاهی محض حالت پایدار شماست. در همین حال می توانید نتایج خود را با جدا کردن خاسته ها از نیازها بهبود بخشید. این دو اغلب با هم همپوشانی دارند که طبیعی است. وقتی فکر می کنید من واقعا به یک تعطیلات نیاز دارم خاسته ای را ابراز می کنید. اما اگر کسی را تعریب می کنید تاک کاری را که می خواهید انجام دهد و بگویید. من واقعا نیاز دارم که این کار را برای من انجام دهی، احتمالا همان چیزی است که می خواهید، نه چیزی که واقعا به آن نیاز دارید. البته در بسیاری مواقع به دوستان نیاز داریم اما فریب دادن دوستان خط قرمزی است که نباید از آن گذشت. اوش خلاق بهتر از ذهن متفکر به خواست رسیدگی می کند. قبل از اینکه به حقیقت شما بدل شود باید خودتان تجربه کنید. آزمونی که در ادامه میشنوید، به شما کمک می کند تا ببینید که در مقابل نیازهایی که توسط چاکرای دوم پشتیبانی می شود، چگونه هستید؟ آزمون چقدر نیاز های خود را محقق می کنید؟ همه افراد توسط هوش خلاق پشتیبانی می شوند، تنها تفاوت این است که واقعا چقدر حمایت دریافت می کنید. این مسئله حیاتی است. آگاهی سعادتمند می خواهد صد درصد از شما حمایت کند. همانطور که یاد میگیرید بیشتر و بیشتر در آگاهی محض مستقر شوید، حمایت از شما به طور پیوسته افزایش می آبد. بسیار مهم است که بررسی کنیم اکنون در چه وضعیتی هستید. برای هر موضوع فهرست شده در ادامه دو سآل از شما پرسیده می شود این نیاز چقدر برای شما مهم است؟ با مقیاس از یک تا ده پاسخ دهید یک اصلا مهم نیست و ده بسیار مهم است چقدر این نیاز را براورده می کنید؟ با عبارتهای ضعیف نسبتا خوب یا خیلی خوب پاسخ دهید به این آزمون به عنوان یک خود ارزیابی فکر کنید، نه یک آزمون. هیچ پاسخ درستی برای همه وجود ندارد، زیرا ما نیازهای خود را کاملا شخصی ارزیابی می بخش یک نیازهای زندگی این بخش در خصوص هفت نیاز مهمی است که در زندگی هر فرد به وجود می 1. من باید احساس امنیت، ایمنی و آسایش خاطر کنم. این نیاز از یک تا ده چقدر برای شما مهم است؟ چقدر این نیاز را برآورده می کنید؟ زعیف؟ نسبتا خوب؟ خیلی خوب؟ دو من نیاز به موفقیت و دستاوردی دارم که بتوانم به آن افتخار کنم. سه. من نیاز به داشتن یک خانواده صمیمی یا سیستم حمایتی دیگر دارم. چهار. من نیاز به پذیرفت شدن یا درک شدن دارم. پنج. من نیاز به یک مجرای خروجی خلاقه دارم. شش. من به چیزی بزرگتر از خودم نیاز دارم که به آن اعتقاد داشته باشم. یک نظام ارزشی بالاتر، ایمان یا یک سنت معنوی. و هفت، من باید در سفر به سوی آگاهی بالاتر و رشد شخصی باشم. بخش دو نیازهای ارتباطی این نیاز بخشی از یک رابطه رضایت بخش هستند. 8. من نیاز دارم که از طرف شریک زندگیم خواسته شوم. نو من نیاز دارم در کنار شریک زندگیم احساس امنیت کنم. ده من باید به شریک زندگیم اعتماد کنم و متقابلن به من اعتماد شود. یازده من نیاز به دلگرمی و محبت دارم دوازده من نیاز به یک زندگی جنسی رضایت بخش دارم سیزده من باید به شریک زندگیم احترام بگذارم و نیز در مقابل به من احترام بگذارد چهارده به تماس فیزیکی نزدیک نیاز دارم پانزده من نیاز دارم هر وقت که خواستم به طبانم با خودم تنها باشم شانزده من به آزادی نیاز دارم تا مسیر خودم را دنبال کنم افته من به کودکانی نیاز دارم که احساس کنند من و شریک زندگیم دوستشان داریم هجده من برای موفقیت به شریک زندگیم نیاز دارم نوزده من نیاز دارم فرزندانم به من افتخار کنند و بیست من باید احساس کنم که مهمترین فرد در زندگی شریک زندگیم هستم ارزیابی پاسخ‌های شما اگر پاسخ‌های شما اغلب قویا مثبت هستند یا خیلی خوب از پشتیبانی بسیار خوبی برای نیازهای خود برخوردار هستید شما با جریان هوش خلاق هم راستا هستید حتی اگر هنوز آن را به این نام نشناسید زندگی روزمره شما با اهداف روشن، فقدان شک و تردید به خود و توانایی دانستن آنچه واقعا برایتان ارزشمند هستند مشخص می شود این آزمون با امتیاز دادن به هر یک از نیازها یکسان نیست مثلا هفت تا ده شما به اندازه کافی خودتان را میشناسید که به موضوع هایی که اهمیت چندانی برایتان ندارند امتیاز پایین بدهید. با این حال جایی برای تعامل وجود دارد. نیازهایی که اهمیت نمیدهید توجه کنید و از خود بپرسید که آیا جنبه ای از زندگی مانند یافتن یک دیدگاه خلاقانه یا نیاز به گرما بخشی و محبت برای شما وجود دارد یا خیر که باید با دقت بیشتری به آن تعمل کنید. اگر بیشتر پاسخهای متوسط یا نسبتا خوب بدهید نیازهای شما اینجا و آنجا براورده می شود. احتمالا برخی از آنها وجود دارند که چشم کرده اید اما مشکل کالی این است که انتظارات شما کم است. برای شما نکته کلیدی این است که احساس کنید لایق بیشتر و بهتر هستید. با داشتن این قصد می توانید گام هایی حتی کوچک در جهت بهرهمندی بیشتر از زندگی بردارید. با چیزهایی آغاز کنید که تهدید کننده نیستند، مانند یافتن یک مجرای خروجی خلاقه اگر امتیاز شما از رابطه با شریک زندگی خود بیشتر نسبتاً خوب است شما نیاز دارید با شریک زندگی خود گفتگو کنید و نتایج خود را به او نشان دهید همچنین کمک می کند که شریک زندگی شما در این آسمون شرکت کند تا بتوانید مبنای مشترکی برای بررسی وضعیت رابطه خود داشته باشید اگر در آزمون به طور مداوم پاسخ های کم یا زعیف داده اید، نیازهای های شما آنطور که باید برآورده نمی شود. ممکن است دلائل زیادی وجود داشته باشد. از جمله تردید به یک رابطه نامطلوب یا تقلا برای براوردن نیاز های افریه. بهترین راه برای شما این است با کسی که شاگسته اعتماد و تحسین شماست گفتگو کنید و با هم به بررسی پاسخ‌های خود بپردازید شما باید در زندگی خود احساس حمایت بیشتری کنید این می تواند مسیر سختی باشد اما در سطح هوش خلاق به پشتیبان درونی دسترسی دارید که می توانید روی آن حساب کنید در حال حاضر این ممکن است خیلی واقعی به نظر نرسد. اماکنون یک یا دو نیاز را در نظر بگیرید و قصد داشته باشید که آنها حتی بیشتر بهبود پیدا کنند. نکته اساسی این است که شما باید با خود در سطح ژرفتری از آگاهی مواجه شوید که در آن پاسخها و راه حل‌ها وجود دارد. در حال حاضر احتمالاً با خود در سطح نگرانی، سردرگمی و تردید مواجه خواهید شد. وضعیت آگاهی محص میتواند راهی برای گریز از این سطح به شما بدهد تا آرامش درونی پیدا کنید. لذت یا سعادت امانطور که قبلا اشاره شد چاکرای دوم جایگاه حواس پنجکانه است. شکی نیست که حواس پنجگانه برای ما لذت برمغان میآورند چه کسی دوست ندارد چیزهای زیبا ببیند به موسیقی دوست داشتنی گوش بسپارد و قضای خوب را بچشد روی دیگر سکه اخلاق اخلاقگرایان معزگر هستند که درباره باری افراد برای ما نطخ می و زندگی نفسانی که اغلب با گناه برابر می شود مردمان مدرن تا حد زیادی به اخلاق اخلاقگرائی منسوخ شده پشت کردند در عوض آنها لذت نفسانی با مشکلات مختلف و افراتی مواجه شده است یکی از راه های درک این موضوع بررسی حوث ها و اعتیاد هاست حواث پنجگانه هیچ ارتباطی با سعادت ندارد در عوض با تکیه بر لذت ناگذیر به انجام دادن کاری می شود که نمیتواند انجام دهد یعنی پایان دادن به درد و رنج اگر از الکل یا مواد مخدر برای گریز به هیت ای آری از نگرانی و ناراحتی استفاده می کنید شما ماده شیمیایی را جایگزین بهبودی کرده اید وچه اشتراک حبس و اعتیاد دو چیز است اولین موضوع تکرار است خوردن یک تکه شکلات یا نوشیدن یک لیوان شراب منجر به دوامی، سپس سوامی و غیره می شود تکرار نشانه آن است که از غذا، الکل مواد مخدر یا سایر عادات اعتیاد آور به عنوان یک اسای کمکی روانشناختی استفاده می شود. ذهن به ذربات مکرر لذت متصل شده است تا سست و بیهز شود یا از موضوع اصلی که معمولا استرابه است بگریزد. اما این روش در نهایت به دلیل کاهش باسته بیهوده است. این دومین چیزی است که در حوض ها و احیاد ها مشترک است. موضوعی که به عنوان یک احساس لذت بخش شروع به کم تأثیر شدن می کند و در نهایت اعتیاد فراگیر می شود. این عادت بدون هیچ لذتی از خود تسییه می کند تا زمانی که فرد تنها مذیت پرخوری نوشیدن بیش از حد یا ممس کردن را برای مهار کردن رنج بیابد. افراد به شدت حوث رابطه جنسی، مواد مخدر، غذا و الکل می کنند. زیرا به سعادت دسترسی ندارند. این پیام پنهان در سیستم چکره است. چندین حقیقت در پیام وجود دارد. بیایید آنها را رمزگشایی کنی. حقایق جرفتر در باب خواسته. آنچه واقعا می یک خواسته نیست در اصل احساس کامیابی است. کامیابی قایی سعادت شادی و وجده است. شما همین حالا هم در خواستگاه سرشار از سعادت هستید. وقتی در پی خواستهی هستید در واقع سعی می کنید آنچه را که از قبل در درون خود دارید دگر بار به دست آورید. آگاهی خود را گسترش دهید و تحقق خواسته به طور طبیعی انجام خواهد شد دسترسی به سعادت مهم است تحقق خواسته در آغاز وجود دارد و از خلال تمام مراحلی که خواسته را محقق می کند تداوام می آبد ممکن است بگوییم این برد برد نهایی است باگا گیتا اظهار می دارد کنش را بدون توجه به سمرگ آن انجام دهید برای قرن ها این اصل کاملا سردرگم کننده به نظر می رسید. ظاهرا ما باید فعالیت های روزانه خود را انجام دهیم و در پی خواسته های خود باشیم بدون اینکه اهمیتی بدهیم که آیا به موفقیت یا شکست منجر می شوند. این در تضاد با خصلت فرهنگ غربی است جایی که مردم برای رسیدن به یک خواسته باید تلاش کنند. اگر برد و باخت هر دو یکسان بود چه کسی بیسبال بازی می چه کسی در محل کار درخواست افزایش حقوق می و در صورت رد شدن درخواستش به همان اندازه احساس رضایت میکرد؟ اما این یک برداشت نادرست است پیشگویانی که گیتار را نوشتند مخاطبی را مورد خطاب قرار دادند که آگاهی محض را به عنوان نقطه شروع هرخواست و کرداری تجربه میکرد اگر قبلا سعادت را تجربه کرده باشید، متوجه می که به چیزهای بیشتری نیاز ندارید. شما فعالیت روزانه خود را انجام می دهید و پیگیر خاستهای خود هستید نه برای منافع شخصی، بلکه به این دلیل که هوش خلاق تشخیص می دهد که به آنها نیاز است. دو مادر با نوزادان تازه متولد شده را در نظر بگیرید؟ یکی از مادران در وضعیت آگاهی محض است و دیگری نگران حال کودکش است. هر دو از فرزندانشان مراقبت می کنند و این اقدامی ضروری است. بودن در وضعیت آگاهی محض این واقعیت را تغییر نمی دهد. با این حال این دو مادر تجربیات متفاوتی دارند، به این فکر کنید که چقدر بهتر است که یک مادر سرشار از سعادت باشد تا مادری که نگران و مسترب است. اگر آگاهی را اولویت خود قرار دهید، بهترین مسیر را در همه موقعیتها پدیدار می کند. با این حال، جوامع در سراسر جهان انتخابهای متفاوتی دارند. تا زمانی که هدف لذت باشد، پاداش در بهترین حالت کتاه مدت است، همه باید پی ببرند که هوش خلاق همین حالا هم در زندگی آنها چاری است. فقط باید خواسته های خود را با هوش خلاقی همسود کنید که همیشه حاضر است. درما و روابط. شما زندگی خود را با همه اطرافیان خود به روش های مختلف به اشتراک می گذارید. رضایت شما در گروه رضایت خانواده، دوستان و همکاران است. در یک کلام، زندگی حال روابط می چرخد. بنابراین چگونه روابط خود را به گونهی که توسط دارما حمایت شود پرورش می دهید؟ به همان اندازه که ما افراد نزدیک به خود را دوست داریم، با آنها درگیر نیز می شویم. شخص ای یک خواسته دارد، شخص بی خواسته دیگری اگر تعارض را تا سطح ایگو پایین بیاورید، به ندرت نتیجه رضایت بخشی حاصل می شود و یکی از طرفین با احساس درماندگی از درگیری خود را کنار می کشد این گونه از که یک رابطه به بحث های بیهودهی تبدیل می شود که برای هیچ کس احساس رضایت به همراه ندارد با این حال، در سطح هوش خلاقه همیشه راهی برای رضایت مشترک وجود دارد. اگر همه بر اساس این شناخت عمل کنند، ایدئال خواهد بود. اما ما با ایدئال فاصله داریم. از آنجایی که دریافتید هوش خلاقه چگونه کار می کند، ارزش کنارگیری از مسیر را نیز می دانید. در آگاهی محض مستقر شوید. نتایجی که ایگو نمیتواند به آنها دست یابد به طور طبیعی به هوش خلاق نایل می شود زیرا همیشه به جای سطح مسئله از سطح راه حل عمل می کند در موقعیت های روزمره کنارگیری با رها کردن خیال پردازی های ایگو آغاز می شود ایگو رؤیاهای کودکانه و خودخواهانه را در سر می که همیشه و به هر وسیلهی می شود به دست آورد حتی اگر خود را از رفتارهای خودخواهانه باز دارید، آمومن بدون اینکه بدانید، تحت تحصیل این خیالات عبز هستید. اگر رابطه ای که خوب پیش نمی ربد را در نظر بگیرید، با خانواده، دوستان یا یک رابطه صمیمی قریب به یقین شما یا طرف مقابل بر اساس یک الگو رفتار کرده اید که ساخته ی ایگاست. هنج پندار که روابط را فلج می کند جرفترین خواسته های ما دوست داشته شدن، پذیرفته شدن و درک شدن ما را به روابط می گشاند به روابطی که در زندگیتان خوب پیش می روند توجه کنید یک یا چند نمونه از این خواسته های جرف در حال براورده شدن است دوستی سمیمی دارید که میتوانید هر مطلبی را بدون قضاوت به او بگویید. همسر یا شریکی دارید که قلبی مهربان دارد. در تره چاکرا میگوییم که جریان هوش خلاق باز است. اکنون به روابط ناموفق در زندگیتان توجه کنید. در این رابطه جریان روان عشق، درک و پذیرش وجود ندارد. در عوض، ایگو در روش هایی افراد می کند که کارساز نیستند و منجر به ناامیدی و اختلاف نظر جرفتر می شود. چرا ما سرسختان پیرو و رفتاری هستیم که به وضوع کارساز نیست و بیچارگی متقابل را به همراه دارد؟ پاسخ این است که ما خیال را به واقعیت ترجیح می دهیم. باگذارید به جزئیات بپردازم و فکر می کنم راحتر خودتان را در آینه ببینی. اندار شماره یک تو باید به من گوش بدهی. در زم، من به تو گوش نمی دهم. وقتی دو طرف مقابل به حرف یکگر گوش نمی دهند رابطه به بنبحث رسیده است. ارتباط قطع شده است. به جای آن مقررات سفت و سخت اجرا می شود. این مقررات شامل تکرار مکرر بحث معمول، فریاد زدن برای شنیده شدن و میخکوب کردن طرف مقابل با تغییر یا سکوت بیعدبانه است. پندار شماره دو اگر تو تغییر کنی، همه چیز درست می شود. مطمئن هستم نیازی به تغییر من نیست. این استطاری کلاسیک برای مرامت است، وقتی از طرف مقابل تقاضا می کنید که تغییر کند خود را در برابر او قضاوت می کنید بدون اینکه که واقعا ظاهر شوید و این را بگویید آنچه به این پندار دامن میزند زند این تبه است که اگر شخص دیگری را به اندازه کافی مرامت کنید تغییر خواهد کرد نکته دیگر این پندار اعتماد به نفس کازبه است که باعث می شود شما احساس کنید که نیازی به تغییر ندارید زیرا طرف مقابل حق ندارد شما را ملامت کند پندار شماره سه. تو این تا مرا خوشحال کنی تا وقتی این را متوجه نشوی من با تو ارتباط برقرار نمی کنم این پندار از دوران کودکی باقی مانده است بچه های خورد وقتی ناراضی هستند، لب و لوچه خود را آویزان و گریه می کنند و تا زمانی که ناراضی هستند با هم ارتباط برقرار نمی کنند. آنها بیش از حد در احساسات خود فرو رفتند. انگامی که وارد بزرگ ساری همان نگرش تبدیل به خودشیفدگی می شود. افراد دیگر وجود دارند تا شما را خوشحال کنند و تا زمانی که این کار را انجام ندهند با آنها ارتباط برقرار نخواهید کرد. بیشتر اوقات فقط از آنها بهره می برید. پندار شماره چهار من از تو بهترم. برای همین حق دارم به تو بگویم که چه کاری باید انجام بدهی. بسیاری از اختلافات اجتماعی را می توان به عقده برتری متقابل نسبت داد. کارشناسان تلویزیونی سیاسی طیف مقابل خود را تماشا کنید و احتمالاً از احساس برتری آنها نسبت به خودتان شکه خواهید شد به خصوص اگر فکر میکنید که فقط جانب شما حق دارد احساس برتری کند در روابط پیام عمومن مخفیانه تر است اما وقتی دو نفر اصرار میکنند که حق با من است نشانه ای از احساس برتری وجود دارد پندار شماره 5 من سزاوار برنده شدن هستم و وقتی برنده شوم تا یک بار برای همیشه شکست می خوری این پندار معادل احساسی بازی حاصل جمع صفر است سوپر بال بازی با مجموعه صفر است زیرا فقط یک طرف می تواند برنده شود اما امور انسانی بالا و پایین دارد یک روز شما پایین هستید روز دیگر شما بالا هستید این باور که شما می توانید برای همیشه بالا باشید و دیگر هرگز پایین نروید خیال محض است. اگر دو نفر، دو جناح یا دو ملت در یک تنگنای بغرنج گیر کرده باشند این پنجپندار تقریبا همیشه نقش اول را بازی می کنند. شاید همه آنها به یک بار نباشند و شاید همه در خصوص اینکه چه احساسی دارند صادق نباشند اما تفاوتی ایجاد نمی کند. هر پندار مبتنی بر دو گرایش اساسی است گرایش اول قضاوت است و دومی تفکر ما در مقابل آنها است این تمایلات فطری نیستند شما باید آنها را آموخته باشید و این بدان مناز که شما می توانید آنها را از یاد ببرید این راه را برای تغییر می گشاید استحاله خلاقانه آن هنگام که در آینه نگریستید و دریافتید که چگونه خیال پردازی های ایگو علیه شما کار می کند می توانید برای استحاله در تفکر و رفتار خود قدم بردارید معآمد هایی که طرف مقابل را خطا کارجلبه میدهد کنار بگذارید. لازم نیست آن شخص تغییر کند تا شما را خوشحال کند. مسئولیت بهبود رابطه بر عهده کسی است که انگیز ایجاد تغییر را دارد. این مسئولیت: زمانی خوشحال کننده می شود که انگیز شما از ایگا دور شود، و به هوش خلاق اجازه دهید بهترین نتیجه را برای شما و طرف مقابل رقم بزند. بگذارید با دقت بیشتری موضوع خروج از مسیر را بررسی کنیم. مهم نیست که چه نوع اختلافی در رابطه شما ایجاد می شود طرف مقابل در حال بحث، مقاومت و ایجاد موانع است. این به نگفتن خلاصه می شود. شما می خواهید به بره برسید که هدف هوش خلاق نیز همین است در اینجا نحوه رسیدن به آن آمده است تبدیل نه به به از کنترل مطالبه یا متقاعد کردن طرف مقابل خودداری کنید در حالت آرامش منطقی گفتگو کنید. طرف مقابل نیست. باید آرام و پذیرا باشد. اگر اینطور نیست، کارها را به تعویق بیندازید تا زمانی که هر دو طرف در وضعیت ذهنی پذیرا باشید. به موقعیت طرف مقابل احترام بگذارید. بیشتر شنبنده باشید تا گوینده. برای سازش آماده باشید. تفکر ما در مقابل آنها را رها کنید به دنبال گزینه های برد برد باشید. خشم و نااشکیبایی را بروز ندهید. در درون خود جایی برای قضاابت نکردن پیدا کنید. تا زمانی که هر دو طرف راضی نشدهید دست از کار نکشید. موضوع کالی این است: وقتی شخص دیگری مانع خاسته شما می شود مسئولیت رفتار خود را بپذیرید این کار بسیار ساده از تلاش برای تغییر فرد مقابل است شما خود را در موقعیتی قرار می دهید که به هوش خلاق اجازه دهید راه حلی ارائه کند انتخابی که هیچ کس دیگری مجبور نیست به آن بپیپندهد اصول رسیدن به بره در محافظ دیپلماتیک به خوبی شناخته شده است اما در زندگی روزمره مورد بیتوجهی قرار می گیرد. همه ما به ترفندهایی پناه برده ایم که به ندرت جواب می دهند یا زمانی که به نظر می رسند کارساز هستند، آثاری از رنجش در طرف مقابل به جا می گذارند. از نظر عملی بررسی کنید که آیا هر یک از این گذینه ها را انجام می دهید یا خیر؟ آنها کم و بیش تزمین شده که شما را از رسیدن به آنچه می باز دارند. چگونه مردم در نگفتن گرفتار می شوند؟ اصرار بر سرزنش و گلایه کردن. نادیده گرفتن دیدگاه طرف مقابل. ورود به بحث در زمان عصبانیت و ناراحتی، طرف مقابل را دشمن خود دیدن. صحبت در خصوص تفاوتها به جای نقاط توافق. تراش برای برنده شدن در حالی که باعث باخت طرف مقابل می شود. فهرست کردن درخواستهای خود و کتاه نیامدن و ترک کردن با عصبانیت بدون هیچ حل و فصلی. مشاجرات بین زوجها و کل ملتها این رفتارهای خود ویرانگر را آشکار می کند و با این حال ما بارها و بارها به اصرار ایگو به آنها متوصل می وقتی آنها را لیس شده می متوجه می که چقدر بی هستند؟ ارزش وقت گذاشتن را دارد که بنشینید و درباره لیست و نحوه اعمال آن در آخرین بحثی که داشتید یا آخرین باری که کسی مانع دستیابی شما به خواسته شد تعمل کنید. به دست آوردن آن چه می خواهید یک انگیزه طبیعی است. اما استفاده از شیوه نادرست برای انجام آن منجر به ناامیدی و بیس همری می شود. خواسته طبیعی ترین مسیر برای رسیدن به هر هدفی را می گوشاید. فقط به این دلیل که خواستن چیزی به اندازه کافی یک انگیزه قوی است. چاکرای دوم به شما انگیزه می دهد که سعادت بیشتری را به دست آورید و به شما انگیزه می دهد که از یک زندگی بدون سعادت بگریزید. نظر من این است که انگیزه اول به دست آوردن سعادت بیشتر و بیشتر بهتر عمل می کند، زیرا خواسته به طور طبیعی به دنبال شادی بیشتر است. اقدام از محل ناامیدی و رنج اغلب به کشمکشی تبدیل می شود که بیفرجام است. نگاهی اجمالی به سعادت به شما می گوید که وجود دارد. سپس می توانید خاسته های خود را به جریان بیاندازی تا لصد شادی و وجد بیشتر را بچشید. چه راه بهتری برای رسیدن به هدف واقعی خاسته یعنی تحقق کامل وجود دارد؟ فعال کردن چکرای خاجی این چکرا همه جنبه های زندگی نفسانی را تقویت می کند به ویژه ارتباط بین خواسته و درما که از خواسته های شما برای تعالی و رشد درونی شما حمایت می کند. چند گزینه که می توانید به طور کلی برای هر چکر را انجام دهید اینها هستند. در آگاهی محض ساکن شوید. انگامی که متوجه شدید نیستید چند دقیقه زمان بگذارید و خود را متمرکز کنید. بر منترای وام مراقبه کنید. بر فکر متمرکز من نفسانی هستم یا من خواسته را در آغوش می کشم مراقبه کنید. سایر مراحل به طور خاص با هدف فعال کردن چاکرای قدرت شما انجام می شود. با شروع از ساحت سعادت هر خاسته ای همین حالا هم برای براورد شدن آماده است این تنظیم مسترزم استحال در نگرش هست. زیرا بر طبق اوزا خواسته ها از احساس فقدان چیزی ناشی می شوند. مراقبه بر چاکرای دوم به شما نشان می دهد که چگونه خواسته را به عنوان توقیان سخابتمندانه از من کافی هستم تجربه کنید. خواسته ها به معنای گسترش فراوانی هستند، نه واکنشی به فقدان، مراقبه شماره یک آرام بنشینید چشمانتان را ببندید و چند نفس امیغ بکشید تا زمانی که در مرکز خود ساکن شوید. اکنون رویایی عجیب و غریب را تصور کنید که آرزو دارید به حقیقت بپیوندد می‌تواند برنده شدن در لاتاری، یافتن یک شریک زندگی عاشقانه تمام و کمال یا سفر دریایی در یک کشتی تفریحی مجلل باشد. اجازه دهید تخیل شما را هدایت کند. اکنون تمام نتایج شگفت‌انگیز تخیل خود را با جزئیات تصور کنید. اگر می توانید از حواس دیگر مانند گوش سپردن به موسیقی دل دلنواز نیز استفاده کنید. سعادتی را که تخیل شما به ارمغان می آورد احساس کنید. بگذارید سعادت در قلب شما گسترده شود. به خودتان فشار نیاورید. حتی ذره ای از سعادت خوب است. پس از چند دقیقه چشمان خود را باز کنید. یکی یا دو نفس امیغ بکشید و به فعالیت عادی خود بازگردید. هدف از این مراقبه این است که به شما نشان دهد که آگاهی شما جاییست که سعادت رخ میدهد. برای ارزا نیازی به محرک خارجی ندارید. سعادت به سادگی با خواستن آن با استفاده از تخیل به عنوان محرکی ظریف در دسترس است. مراقبه شماره 2 این یکی نسخه پیشرفته مراقبه شماره یک است. آرام بنشینید، چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق بکشید تا زمانی که در مرکز خود ساکن شوید. اینک از درون لبخند بزنید. لبخند را تصور نکنید بلکه به سادگی لبخند بزنید تیرا شما آن را خواستید. احتمالا اگر ابتدا از بیرون لبخند بزنید برای شما کمک کننده خواهد بود. سپس انگیزه درونی را تا ناحیه قلب خود دنبال کنید. اجازه دهید لبخند شما برای چند دقیقه به تور بیانجد. اگر حواستان پرت شد به راحتی به لبخندتان باز هر زمان که پی بردید لبخندی واقعی را در درون خود احساس می کنید، مراقبه تمام می شود. در هر زمان مایل بودید، می توانید چشمان خود را باز کنید، یک یا دو نفس امیغ بکشید و به امور عادی روزانه خود باز کردید. این مراقبه به طور مستقیم به احساس سعادتمندی صرفاً با خواستن آن دسترسی پیدا می کند، تمرین این مراقبه چندین بار در روز بسیار مفید است. شما در حال تعلیم ذهن خود هستید تا تشخیص دهد که به میل خود میتواند احساس سعادتمندی داشته باشد. با گذشت زمان این تعلیم ملکه ی ذهن می شود. اگر تمرین تمرکز خود را آغاز کرده اید، هر زمان که احساس کردید از آگاهی محص منحرف شده اید، در پایان لبخند بزنید. با احساس تمرکز و آرامش به خود لبخند بزنید و اجازه دهید آگاهی شما آکنده از احساس سعادتمندانه شود. مراقبه شماره سه همانطور که قبل از به خواب رفتن در رخت خواب دراز کشیده اید روز خود را مرور کنید. هر رویداد مهم را تجسم کنید. وقتی نتیجه خوبی را به یاد می اجازه دهید احساس کامیابی در شما به طول بینجامد. لازم نیست این رویداد یک موفقیت یا دستاورد بزرگ باشد. می تواند کرمهی محبتامیز، آهنگی که علاقه دارید یا تماشای کودکان خود در حال بازی باشد. هر تصویری که در ذهن شماست اجازه دهید در احساس سعادتمندان قوطهور شود. این به ذهن شما کمک می کند تا کمی درنگ کند و از دسترسیش به سعادت قدردانی کند. اگر رویدادی ناخوششایند یا ناموفق را به یاد میآورید اجازه دهید احساس منفی به طول بیان تا زمانی که خیلی آزاردهنده نباشد. اگر دگر بار آشفته شدید، چشمان خود را باز کنید و چند نفس عمیق بکشید. اما اگر روگ داد منبع ناچیزی از رنجش، نگرانی یا اندوه بود، اجازه دهید این احساس فروکش کند تا زمانی که از بین برود. حتی می توانید به خاطره بگویید، به من خدمت کردی، دیگر به تو نیازی ندارم. همچنین مفید است که این احساس را با یک جریان ثابت هوا از طریق دهان خود بیرون دهید. در هر صورت شما از احساس منفی می خواهید که برود. پس از رهایی برای لحظه ای آرام دراز بکشید. سپس با لبخند زدن از درون به احساس شادی بازگردید. این مراقبه پیشرفته تر از بقیه است، زیرا شما خواستار تبدیل احساسات منفی به احساسات مثبت هستید. با این حال، تسلط بر آن بسیار ارزشمند است. زیرا هنگامی که بتوانید یک احساس منفی را تغییر دهید، دیگر به حافظه شما دسترسی ندارد. علاوه بر این، بدون توجه به آن چه در طول روز برای شما اتفاق افتاده است، اطمینان بیشتری خواهید داشت که در وضعیت قنای درونی هستید.